بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین جلسه 11 همه توحید یک تا پرستان موضوع بحث اینه بحث ما این بود که در موضوع توحید ما سنو سیر داریم سنو حرکت یه سیر من الخلق الى الحق یعنی از عالم خلق به طرف عالم حق حرکت کردن این حرکت هم حرکت است. نرکت حرکت و جسمانی یعنی با قبای عقلی خودمون از دیدن آیات الهی متوجه خداوند میشیم بنابراین یه سری از عالم خلق به طرف آلم حق داریم این سیر با چه زابطهی باید باشه و به چه نهب باشه این در جلسات قبل رو کردیم برهانهای متناسب با این موضوع رو اقامه کردیم سیر دوم ما سیر من الحق الى الحق بود از خدا به سوی خدا مگه میشه از خدا به سوی خدا بحث کرد؟ بله وقتی به خدا رسیدیم از خلق به حق رسیدیم که او وجود داره بعد میتونیم بحث کنیم سفات او چیه؟ کارهاش مثلا چجوره؟ سفاتش لازمه ذاته یا این ذاته و از این قبیل مباحث که بحث که درباره خود خود خداست اول از خلق به حق بعد از حق به حق یعنی بحث کردن در ذات خدا از این قیل هم بیارم که بحث های ما در ذات خدا بحث های سلبیست نه ایجابی یعنی نمیگیم خدا چیه چون اون چیزیست که احاطه علمی به اون نمیشه کرد میگیم اینطور نیست طور که خودش گفته لم یدد و لم یولد زایده از چیزی نشده و از او چیزی زایش نمیکنه. و او واحده متکسر نیست خبال لا احد و از این قبیل نیست ریسکه مثل این شهر بیماننده این بحث ما از ذات الهی بحث از کینونت یا ماهیت و حقیقت ذات خدا نیست بلکه بحث ها بیشتر سلبیه اونجا که می ریسیم و عکس در بحث های دیگه بحث های ایجابی میکنیم در اونجا ما چند موضوع بحث کردیم که تکرار نمی کنم این مقدمات هم برای این بود که از ابتدا بیایم سر بحث خودمون بحث ما امروز در اون سیر سیومی است یعنی من الحق الالخلق دو مرتبه از خدا به خلق برگشتن یعنی یه قوس سعودی داشتیم یه قوس نزولی از خلق به خدا از خدا به خدا از خدا به خلق در این بحث راجع به توحید افعالی بحث داریم وقتی میخوایم از خدا به خلق بحث کنیم راجع به توحید افعالی یعنی خدای تالا یه توحید ذات داره یه توحید سپات داره یه توحید افعال توحید افعالی یعنی یعنی اینکه هیچ موجودی در عالم نیست که استقلال داشته باشه همه از فیض الهی برمندن و همه از او نیرو و توان میگیرند. لا حول و لا قوتا ایلا بالله این جمله که در بین مسلمان ها خیلی رایته، حدیثه و در قرآن کریم شبیه این آمده در سوره مبارکه کهف اونجا آمده که دو نفر که ملحد بود و یکی مبهد وارد باغ اون ملحده شدن و اون گفتش که ملاوجه کنی این باغ رو گمان نمیکنم هیچ هیچوکی اصلا از بین بره چه باغی دارم چه پاره حرفا اون گفت لولا از که جنتک قلت ماشاءالله لا قوه الا بالله چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی اینا همه به خواست خداست و هیچ نیروی نیست مگر به اتکای او چرا اینطوری فکر نکردی به خودت بالیدی اون گفت نه مرتب همینی که گفتم انسان و اختیار دارد یه لازمه کفتاش این بود این باغو به پا کرده و شب برگشتن یه سائقه آمد و باغ تبدیل به زغال شد آتش گرفت درخت و هم سرعت کرده فردا که آمد باق نیست دیگه ما فهمید که انسان مقهوره نگاهش و به همین جهت باید منیت ها و خده ها و استکبار ها رو کنار بذاریم این یه داستان است که در سوری شریفه کهب آمده برگردیم به موضوع اصلی بنابراین موضوع اصلی این است که لا و ولا قوت الا لا. مسئله توحید افعالی اگر کسی تصور بکنه یک اطومی مستقل, مستقل مستقنیست از خدا مشرک. بلکه فقط خدا مستقله و مستقلی است همه فیض میرن مثل فرد کنم انوار خورشید که از خورشید از هم که در واقع سرچشم میگیرن همه موجودات نیرو و فعالیت و انرژیشون رو از او گرفتن این توحیل افعالیه اجمالا بلی که قابل فهم باشه موضوع ولی در اینجا باید توجه داشت که افعال الهی گاهی روی همه فعل روی پعه مثلا مثال براتون میزنن یکی داره سخنرانی میکنه صداش یه کمی ضعیفه شو میگن صدا بلندتر و اون صداشو بالاتر میبره دو تا فعل انجام داده یکی سخنرانی یکی صدا بالاتر رفت کسی کاری داره میکنه میگن یه سریعتر این کارو انجام بده دو تا کار رو هم افتاده همون عمل و هم سرعتی که بعد بهش اضافه میشه آیا موجودات عالم همه آثار و افعال خدا نیستن چرا پس اون فیض جدیدی که میاد برای همشون اونم فعلیه روی فعلی یعنی در حقیقت اینطور نیست که عالم مستقل باشه خداوند یه فیض جدیدی بهش بده مثل ساختمانی که محصولات چیزهای اولیه‌اش مواد اولیه‌اش مستقل از بناست بنا یه فیضی روش یه شکلی میسازه دستگاه خلقت اینطوری نیست یعنی دوتا فعل روح هم هر دو مال یه فایده. همون موال اولیه خدا ایجاد کرده و همین نظم جدیل و فیض تازه‌ای که بهش عطا میکنه بنابراین باید کار خدا رو شناخت تا خدا رو بشناسیم بسیاری از افراد و اشخاص از کارشون از نحوه فعالیتشون شناخته میشن. بعد اینجا یه وحدت وجودی پیدا میشه. وحدت وجود چرا پیدا میشه؟ وحدت وجود دو جوره. یه وحدت وجود صحیح داریم، یه وحدت وجود غلط. اینطور نیست که هر وحدت وجودی هم غلط باشه. اون که ابن عربی آندلسی تو کتاب خودش فصوص الحکم گفته میگه سبحان الذی خلق الأشیاء و هو اینها منزه است خدایی که اشیاء رو خلق کرده و خودش عین اشیاء این غلطه این, این وقتت وجود غلطه ابن عربی در کتاب فصوص الحکم اونجا یه صحبتی داره مبدی بر اینکه حضرت موسی وقتی که برگشت از کوه طور سروریش برادرش گرفت و گفت که چرا تو سکوت کردی در برابر این گوستاد پرستی بنی اسرائیل خب در قرآن این موضوع آمده و حضرت هم جواب داد که من سکوت نکردم کادو یفتلوننی نزدی بود حتی من بکشن و بعد من گفتم که خب موسا نفوذ کلمش بیشتره بیدم بیشتر از این نرم بذارم موسی برگرده و او کار درست بکنه بنابراین مخالفت هم کردم و همین جهت موسی موسا زود خشمگین شده بود. البته خشمش برای خدا بود. نه برای هوای نفسه. و در واقع اتخاهی کرد. ابن عربی اینجا میگه که نه موسی اعتراضش این بود که چرا تو مخالفت کردی با گوساله پرستی. ولی که گوسالم این خداست. اِنَّ الْعَارِفْ يَرَ الحق فِي الْأَشْيَاءِ بل یراه و این کلشن. آرف خدا رو در اشیاء می‌بینه بلکه که این اشیاء می‌بینه اون گوساله این زمین این آسمان الله خداست و هر حال مصول این است که این کتاب اینطوری این یا این درستی یعنی سابقه مسیحیت هم پدرانش اینا داشتن اون فکر شرکی اینا شبه تا از پدران همطور بهش رسته بوده به اینجا این وحتت وجود قلطه اما وحتت وجود این است که لا یستفاد غیره دیار غیره و فعل یعنی شما در نظر بگیرید خداست و آثار او خداست و افعال او خداست و آیات او هیچ دیگه نیست و اون آثار مستقل در برابر خدا نیستند تابع او هستند مثل بگی خورشید و نورش این یک باهل حقیقی است بنابراین در برابر خدا هیچ چیزی نیست نه زمان نه مکان نه نه مقدار نه رنگ خداست و تجلیات او خداست و آثار او این احساس بکنید بکنیم خود شما می که از آثار او هستیم و همم هم آن اون اصلی. زیر زیرنشین علمت کائنات ما به تو قائم تو تو قائم به ذات این وحتت وجود صحیحه با اون وحتت وجود کفری فرق داره پدر بزرگ ما که بر فرائد شیخ انساری شرحی نوشته که خیلی مفصل بهرال فواعد اینا دو دفعه این کتاب رو از خونه من دزدیدن. به درد کسی نمخوره کتاب مشکلیه فهمش اینها از کن که خریدم باز جاش گذاشتم باز امازم دوزیدم بردم نمیدونم رو چه قصد و چه نیت اینها به حال اونجا نوشته که علمای حقیقی اسلام می‌دونند که وحدت وجود اون نیست که صوفیه قالی قلات صوفیه گفتن و خلاه و خلق رو یکی پنداشتن بلکه وحدت وجود صحیح هم داریم و همینه در وحدت وجود در برابر ثنویت وجوده ثنویت یعنی دو, دو وجود مستقل هست وجود ما عالم امکان و وجود ذات احدیت که عالم واجب وجود باشه اینا در برابر همین دو چیزن ولی ما یک چیز بیشتر نمیدونیم یک حقیقت هست بقیه همه ظلند فیئا سایه هستند آیتا تجلی هستند تجلیات خدا هستند آثار او هستند تنظر الی آثار رحمت الله آثار رحمت خدا رو نگاه کن بنابراین این طور را رو دیدن و از کسرت به وحدت رسیدن یه موضوع دیگری است مسئله خیلی دقیق و مهم است خب حالا ما رسیدیم به اینکه ذات الهی در ذات هگانه است و بیشتریک و گفتیم وحدت او وحدت عددی نیست یک نیست که دو تاب داشته باشه سه داشته باشه چهار تا داشته باشه وحدت او وحدت سنفی نیست مثل اینکه یه سنف متعددن ولی به هر حال یه سنف واحده وحدت او وحدت ترکیبی نیست مثل که انسان یکی است ولی مرکب از جسم و روح و خون و استخوان و آهن وحدت خداوند یه وحدتی است که لا شریک دارد لا نظیر لا مثل الله لا, لا،, لا ترکیب له یک حقیقت مطلق بی نهایت و بی به همین جهت هم کسلت نمیفذیله بلکه بی نهایت کجا تمام میشه که دومی شروع بشه نهایت او نداره تمام نمیشه در یه جایی که دومی شروع بشه تکثر مربوط به محدودیته هم میگه رو پایین بیار ما نمیفهمیم شما بعدی این خوره بالا این بحث ها های الهیات به معنی اخسته طبعا ای قدیب بالاست و ای خودمون بالا بکشیم که قضایه رو بفنیم و هر حال خب پس از این به وحدت سپات رسیدیم بازمانت من برگشتم عقب که چون ای قضیه قضی ممکنه مشکل باشه وحدت سپاتم این نیست خدا من یه سپات محدودی داشته باشه علم بعد قدرت علم حدی داشته باشه بعد قدرت شروع بشه بعد قدرت محدود باشه رحمت اغنوم های متعدد در ذات خدا تصور بشه مسیحه ها به سه اغنوم قائل دادن قرآن گفته اینا مشرکن اون وقت ما به عدل خدا برای خدا اغنوم قائل بشیم هی hey خداوند زائد بر ذاتش این که خدا یک حقیقت بسیط لایتناهاست که در این واحدیت همه چیزها رو با خودش داره مثال برسان زدن مثل عدد بینهایت یا یه عدده. اما هم صد توشه هم دویست توشه هم هزار توشه هم ده هزار توشه هم صد هزار توشه اون یک وجود بی بینهایت هست که تمام کمالات در او هست <تصفح> چون که سد آمد نوت هم نزد ماست <تصفح> اینا رو بحث کردیم دویتا یاداور میشم این توحید سفات اینه ما خود اول نهت البراغر نگاه کنی گفته که اگر کسی به خدای تعالی سفات زائد قائل باشه دلالت کل سفتن ان انده غیر الموصوف و دلالت کل موصوف انده غیر سفه فمن وصف الله فقط صناه فقط قرنه کسی خدا رو اینطوری وصف بکنه به سنویت او قائل شده به دعیت او ذات جدا سپات جدا ارز کنم که بنابراین سپات خدا این ذات خداست و خدا یک است که اون حقیقت همه چیزو داره همه چیزه مثل بی که همه عددها هست اون یه است که همه چیزه علم بی قدرت بی نهایت منطب به نسبت اشیا اون حقیقت نسبت به معلومات عالمه نسبت به مقدورات قادره نسبت به محوبات وخشنده است نسبت به گناهان قفاره همش یک حقیقت یک تراقه است در این خانه و از پرتوبه وی هر کدامینگرم انجامنی ساختند یعنی معنی واحد بعد این مطالب رو من عرض کنم که یک قسمتش و گوشه تو کتاب دعوت مسیحیان به توحید نوشته بودم جناب آهی محمدی سلام الله ایشون ترجمه کردن به انگلیسی و برای یک کشیش دانشمندی پرستادن با اینکه کتاب زد به مسیحیت دعوت مسیحیت به توحیده و اون گفته بود این خیلی کتاب مهمیه ترکیه شنیدم اثر سردات ایشان خیلی کتاب مهمیه خوشبختانه زحمت کشدن به انگلیسی هم ترجمه شده در کانادا و اونجا هم پخش شده خود منم برای چهل تا کم که کلیسا اسکیسه های ایران که آدرسونه پیدا کردیم این حرفا ارسال کردیم پارسیش. به هر حال اگر دنیا متوجه الهیات به معنی اخصه اسلامی بشن میدونن که این مسئله خیلی مهم و بزرگی است. خدایی کیست و دو, دو نیست قضیه ساده ای نیست. به هر حال صحبت بر سر توحید صفات بود بعد توحید افعال که امروز بحثشو کردیم. ای من برمی‌گردم. خاص اینکه این خانم گفتن که این مسائل مشکلی بود که که آسانتر بشه، پایین‌تر بیاد. از تکرارش هم اعتراضی میکنم بحث کردم که پس توحید افعال این شد که تمام عالم فیض الهیست است. نور خداست. همه تجلیات الهی است. آثار اونه فنظر اله آثار رحمت الله این آثار رحمت خدا آثار قدرت خدا آثار علم خدا هست پس جز خدا و آثارش هیچی نیست هیچ موجودی مستقل در برابر خدا نیست خداست و آثارش و بس. حالا باید توجه کرد به یه موضوع که ذهن رو قدیم قدی می آزاره. اگه خداست و آثارش پس چرا بعضی از آثار زده خدا هستند مثل انسان هایی که مخالفت رو با خدا میکنن این هم از آثار خداست. چون خدا مختار مطلقه اختیار خدا بر تجلی بکنه سپاسش تجلی میکنه اختیار خدا بند که رب و که یخلق و یختار و ما و یشا ما کانده همون خیرتون امره هم اختیار خدا در انسان تجلی کرده حیوانات دیگه تابه غریزن مجبورم برای از اونا رو ارز که می به طرف مخصد درختها، تابع تابه سازمان داخلیشون هستن آبند های آبکشی و چوبنبهی و چوبی و نمچی و پلا که در آشناسی میگن ریشه و ساق و مسائلی که دارن همینطور دیگر موجودات اینا همه تابع یه سلسل قوانین هستن که اونا رو دارن اداره میکنن. ولی انسانه که میتونه حتی با قوانین عمومی طبیعت مخالفت کنه قانون عمومی طبیعت این است که اجسام مثل آهن و اینها روی زمین باشن جاذبه زمین نار نگه می داره ولی انسان کاری میکنه که این فلیس ها و آهن ها پرواز میکنن کنن جازبه رو بالا به صورت هلیکپتر ها هوا پیما ها گاهی بیماری های طبیعی پیدا میشه از کردم که سابق بیشتر مردم ایران تو که من یادم میاد از سند مثلا شیه سالگی خیلی ها رو بودن بعد واکسن آبله کشف شد یعنی بشر این کار کرد و ارز کنم که تزریق شد از کودکی به بچه ها تزریق میکردن و رفت این قضیه کاملا محدود و مقید شد این حرف این بیماری هم کلام پده شده ارز کنم که بالاخره هر بیماری یه جنبه طبیعی داره یه جنبه بشری داره ممکنه بشری در چکسیر و انتشارش کارایی کرده ولی بالاخره میکروبه جاندار حیات تو خدا پریده ویروسه ولی باز به وسیله بشر قابل کنترله. حالا تا ضربه هاشو بخوره این مدتی هم که ضربه بخوره اسمش تقدیر تقدیره این ترهای که تو آفرینش هست حالا خود این تقدیر قضا و قدر بحثش مفصل جداست به هر حال صحبت بستر این است که آنچه که بشر میکنه که نتیجه اختیارشه اینم مذهلی از مظاهر اختیار خداوند خدا, خدا مجبور در اعمالش یا مختار مختاره حالا بعد مظهر داشته باشه این اختیار خدای تعالی وقتی که مزهر داشت و در انسان اختیار خدا تجلی کرده لازمش این است که فساد و این هم باشه ولی در قرآن هست که در ابسلای خلقت انسان ملاقات به خدا عرض کردند که یعنی این دو رهای و قدسی که هرگز خطا نمی کنند به ذات الهی گفتن که تاج آلوده پیاه من یهفسد و پی ها و قد دماغ دما هی خودت می دونی نسلی داری خلق می کنی که فساد میکنه خون ریزی میکنه قال انی اعلم و مالات اعلم و فرمود که شما یه باید قضیه رو میدونین یه باید دیگر نمیدانید من میدانم که چه دارم میکنم میدونم فساد این ها میشه آزادی ارزشی داره و انسانها رو به جایی میرسونه که در برابر خون ریزی و فساد این حرف اون ارزش خیلی بالاتا در برابر خلق موجود آزادی که خدا سجها انبیا اولیا پاکان نیکان پیدا شدن که با داشتن آزادی قرارز خودشونو و های شیطانی رو زیر پا گذاشتن و اطاعت خدا کردن این ارزش میده و اله همه موجودات مثل سیب و گلابی میشن که باید شیرین بشن و در بیان اینها همه ارز کنم که ترک شیرهی میشیم همه مجبوریم که اینطوری بچیم اینطوری عمل کنیم. باالزه خدای تعالی یکی از مظاهر وجود خودش رو که همون اختیار حق تعالی است که آزاد بودنشه به انسان داده. امیرالمومنین علی فرمود که لا تکون عبد غیرک و قد خلقک الله را بنده دیگری مباش که خلاون تو رو آزاد خلق کرده. این امتیاز از دست نده. و حالا این آزادی رو میتونیم آزادی های و اجتماعی کنیم آزادی های سیاسی کنیم با دنیا اگر پیش کرده در اثر این نعمت عظیم بوده و اگر شرق عقب مونده از وقتی شده که این آزادی ها محدود شده اینها. به حال این مسئله مسئله خیلی قابل توجهی است که در جنبه های مختلف میتونه دخالت کنه بحث ازش بکنیمیم. برگردیم به توحید افعالی خب آیا اگر بگیم که همه اشیا از خدا فیض میگیرن جبر ایجاد نمیشه همه مملوک او هستند، همه از او فیض میگیرن بعضی از اشخاص جبر رو نتیجه علم خدا به همه چیز میدونن چون خدا همه چیز رو از قبل میدونه پره بس منابرین انسان مجبوره در که علم کشف میکنه واقعیت و وادار نمیکنه قدرته که وادار میکنه بنابراین اون بحث رو از اونجا باید تغییر بدن بیارن تو توحید افعالی بگن چون همه موجودات پرتوبی از قدرت خدا هستند پس جبر هست اونجا علم کشف میکنه یعنی علم میگه که این شخص با داشتن آزادی و اراده این عمل رو انتخاب میکنه مجبورش نمیکنه ولی قدرت نه قدرت ممکنه شبه جبر پیشید حال ما چجور شبه جبر رو از کنم که جواب بدیم در توحیل افعالی مثالی براتون بزنم فرض کنید که یادم میاد سابق خب همه کنتور نداشتن من دارم از هفتاز سال پیش توبت مبارم مثال جه که خودم مثلا در 15 ساله بودم همه کنتور نداشتن بعضی ها کنتر داشتن مرتباً آبنمان میپرداختن بعضی ها زرنگی میکردن از همسایه های ما یه سیمی میداختن روی سیم اصلی بدون کنتر استفاده میکردن ازش خب قضیه اینطور ظاهرن هم کسی مخالفت باشون نمیکرد ولی چون دستگاه و بازدستاش متوجه بودن آخر سر میامدن آبونمان بیشتر از اون اندازه که دیگران کنترل دارن ازش میگرفتن یعنی جریمش هم ازش میگرفتن داستان اینطوری همه از فیض خداوند بهره مندین حتی اون یارو که از دیوار مردم میره بالا و میره دزدی بکنه به حول الله و قوته دزدی میکنه نه به حول و که خودش مستقل از خدا داره با اون حول قوه که بهش داده منتها داستانش اینه همه دارن از کارخانه برق فیض میگیرن از جیب خودشون نیست منتها یکی به غلط میگیره یکی به درست اونی که به درست میگیره که از اسواله از بحرمن میشه اونی که به غلط میگیره آخرست جریمه میشه پوسش هم کنده میشه به خاطر این یعنی همه از خداوند بهره میگیریم منطقه خدا درای انسان مختار که مظهر رب و که یخلق ما و مایشا و یختاره مظهر اختیار خداست اگر از اختیاراتش استفاده بد بکنه از اون حول قوه که خدا داده به جای که در کار خیر اینو مصرف کنه در کار دزدی مصرف کنه در یوم الحساب و چه بسیار در همین دنیا به حسابش میرسن بنابراین در اینجا هم جبر پیش نمیاد اون اخیاری که انسان داره در تمام عالم اگر زیبایی هست مظهر جمال خداست اگر قدرت هست مظهر جلال خداست هر چیزی هست اصلش اونجا هست که فر اینجا پیدا شده اونجا باید اختیار باشه که در بشر اختیار هست و اگر خدا مجبور باشه که خدا نیست یه نیروی بالاتر او رو مجبور و محدود کرده بنابراین چون او مختاره و انسان یکی از برگسته ترین مخلوقات اوست تجلیه اختیارات خدا در اوش آشکاره خب این از که پس معنی لا حول ولا قوت لا بالله در به اصطلاح همون عمقش اینها همینه که همه موجودات جائمان پیزه از خدا چون کسی که با نیروی خدا داد داره میره بیمارستان ها سرکشی میکنه مثلا کمک بکنه به بیماران بیبزاعت فلان کنه یا دارو برشون به ببره. چه چون کسی که از دیوار و مرزم داره میره بالا که نستشب بره فرض کنه یه چیدی برده اینها همه با حول و قوه خدا دارن حرکت منطقه این مثل همون است که از اون نیروی برق بعد داره استفاده میکنه از کم یکی نیر استفاده درست میکنه پس خلاصه مطلب این که توحید افعالی ما رو متوجه وحدت عالم میکنه که همه عالم همه جهان از کلامی که یک پارچه با هم متصلن و با خدا و عالم عالم واحدیست و همه آثار و تجلیات او هستند دیاری مستقل در این عالم نیست در برابر خدا و نظارت خدا بر همم هست اونایم که از نیروهایی که خدا تپیز بشون کرده دارن سو استفاده میکنن اینام به حسابشون رسیدگی میشه از نگه اول پس کایقاات ها عالم از کم حسابی داره کتابی داره نظام دقیق عالم بالاخره بیهودنی نیست انجام داره. این بحث است که امشب میخواستیم بکنیم سوالات هست میخواین به سوالات هم جوابیم. بله بحث ما تموم شد حالا سوالاتی آقایی دارن به فرمانی جواب نوابیدیم اما خودم سوال کنم آقا فرمانید که همه چین تجربیت خب اینجا سه تا مسئله میسید سه نوع امیلی وجود داریم اشعری ها اخباری ها و معتظری ها شما وقتی میگه بخrne که خو خشیشت هم تجدید خداست بعد کارها هم تجدید خداست ما بعد بیماری های خطرناک و بعد هم که میاد با تجدی خداست بعد دیو بعشادی اخباری ها یا متذل چون به هر حال از این اندر ده این سال نیست و می سه دسته هستند عیلهشون این <laughs> از کنم که هر سه دسته معتقد به توحیل افعالی هستن به شما به کدوماشون شما به اونی که حقه باید نزدیک باشید کاری به فرقه ها نداشته باشه از کنم که ببینید اون هر سه دسته به توحیل افعالی قایلن هیچ کس نمیگه این فرسکان ویروس هایی که پیدا شده که امروز سایهه اینا مخلوق شیطانه مثلا در خلقت فقط یک اصل در عالم هست. الله خالق کل شهی. و, و هوه علاوه کل شهی اندوکی. خالق همه این اشیاء خلاست. فقط زرطشتی ها که اسمشون رو نیبردین اونم زرطشتی های قدیم. معتقد به سنویت بودن. معتقد بودن که هرچه شر از مبضع شر یعنی از اهلیمند شده. و هرچه خیر از مبضع خیر یعنی اهور و مزده شده. ولی اشکال بزرگی برشون بود که نتونستن حل کنن و اون این که مبدع خیر چرا رو در کنار مبدع شر آپریده. چرا در یه آلمی انسانو مثلا که مخلوق اهورا مزداس آپریده که شیطان به اون دسترسی داره احریمن مرز واسه ایجاد میکنه پیرید ایجاد میکنه مرگ مگه قادر نبود که اینا رو جدا توی آدم دیگه ببره که در دسترس شر مثل احریمن نباشه پس او راضی شده به این که مخلوقاتش در معرض شر باشن و راضی شدن به شر خودش شره و او مبدع خیر مطلق هیچ شری درش نیست پس این با مبدع خیر مطلقه نمی سازه. بنابراین همه مخلوقات خالقه واحد دارن دستبندی کردن به مشکل و به تناقض میرسه حال ما باید استعدال عقلی بکنیم شون اون مسرساشگیه که قرآن قبول نداره بهش بشه این راهی که تو میری خب مگه تا نمیگی که رضایت به شر خودش شره میگه چرا بس احور و شما راضی شده که من که خلق کرده در معرض شیطان قرار بگیرم مریض بشم، تو میگی بلیه ها رو همه رو احریمن ایجاد کرد مریض بشم، پیر بشم، شکسته بشم ناراحت بشم، فلان بشم. پس او راضی شده و علاق قاضر مستقه یک جهان جدایی درست میکرد که هیچ در معرض حمله احریمن نباشه پس یا با احریمن ساخت و پاک کرده که با مبلع شر ساخت و پاک کرده خود این شره خود این شره یا آجزه از این که عجز خودش شره جز استثبات مثبت اینها نیست عجز در مبدعی خیلی راه نباید داشته چون عجز خودش شره از این جهت دو مبدعی صد درصد عرض کنم که قدرته و به بومبست میرسه حالا که این همه چیز او آپرید الله خالق کل شهر منتها در کنار قدرت الهی حکمت هم اضافه بکن آره نه تنها علم حکمت اصاو <تصفيق> ان رهو شیعن و هوا خیر رو لکم و اصاو انتوهبو شیعن و هوا شر رو لکم چه بسا چیزی رو شما شر میدونید ولی خیله تو نظام کلی خیله نسبت به تک تک ممکنه بد باشه ولی تو نظام کلی وجودش لازم بوده میخه مولدا رو گفته لولت تضاد لما سهل فیزن المبدا الجواد این اگه تضاد در عالم نبود تکامل نبود این تنازع ها موجب تکامل میشه موجب ترقی میشه اگر تضاد نبود فیض از مبدا جواد نمیامد لیاقت پیدا نمکردن اشخاص فیض جدید بگیرن این خودش در بحث حکمت الهی مستقل باید بحث کنیم اونجا حکمت الهی، ادالت الهی اینا باید نمیشه تو یه جلسه اینا رو هم داخل هم کرد اینا هر کدوم مستقل باید بحث مبسوط و مفصل داشته باشه پس میبینیم الهیات قرآنی و اسلامی به اینکه که خدا یک هست دو دونیست تمام نمیشه این خودش یه بحث خیلی مفصلی بحث ها داره از کنمنتا متاسفانه تو محیط ما اینا کوچک دلو داده شده ولذا ذا به نظر مردم یه جایی عجیب میاد که اینم هست اینطوری هم هست نه مسئله در اصل همینطور وسیع بوده بزرگ بوده اینها بنابراین از اون سه دسته‌ای که شما فرمودید هر کنم که بعد همه اون سه دسته به توحید فعالیت خدای تعالی به توحید افعالی قائلن مسلمانان دیگه هیچ کلومتون هیچ موضوعی مستقل اونتا بعضی هاشون مثل اشعری ها به جبر نزدیکن ولی خود میگن ما جبری نیستیم ما به نظریه کسب قایلیم کسب هم خودش با جبر تپاگوتایی داریم ولی با اتزالی ها و حتی اخباری ها اونا همه میگن الله خواده و کلی شای جبری هم نیستن و ما هم بر همین اقیه هستیم قرآن کریم هم به جبر دعوت نکرده چون هر پیغمبری بیاد بگه که جبر هست اول تئوری خودشو یعنی تیوری رو نقض کرده چرا؟ مجهد که به مردم میگه بیای تابع من بشه اونا میگن نمیتونیم دست ما نیست خدا ما رو برخلافتو کرده و ما حقیم بنابراین هیچ پیغمبری نمیتونه جبری باشه تا بگه که بیای طرف من ای کفر بگه ما این کفرمون مال خداست خدا به ما داده تو خودت میگی از خود ما نیست ما مجبوریم بنابراین دعوت پیغمبر نغز میشه بنابراین هیچ پیغمبری معتقده به جبر نیست بعده در تیجه سطح گذشته تا حالا که قرار میدید دستبندی هایی کردید تا به حال همه ما از <تصفيق> اشراق بگیرد الان سوالی که در ذهن شکل میگیره اینه که اگر خدا واحده است این صفات ها رو که تفکیق میدید صفت ذاتی و صفت فعلی چگونه میتونه این رو هم ارتباط بدیم یعنی چگونه میتونه به یک ذات واحد اینها رو مرتبط کنیم ببینید در بی نهایت همطور که گفتیم همه عددها هست تو عدد بی نهایت با اینکه یه عدد واحده صد هست هزار هست یست هست هست هست هست حالا اگر بخواد عدد بی نهایت تجلی کنه تجلی او خود نیست که فعل اوست حال تجلی او خود او که نیست فعله اوست بنابراین اون کثرت در این وحدت که در بی همه عداد هست یعنی در این واحد بودن کثیر هم درش کنهو در مقام تجلی اون کسرت ظاهر میشه به صورت انسان حیوان نبات، فرشته زمین آسمان از کنم که مثل که اون بی تجلی که میکنه با اینکه یک عدد واحد بیشتر نیست ولی در مقام تجلی ارز کنم که به کسرت کثرت پیدا میشه به اصطلاح اروپا یا حکما برای اینکه این رو تا اندازه به ذهن بشر نزدیک بکنن میگن که دریا یک حقیقت واحده ولی وقتی تجلی میکنه یعنی به حرکت مثلا میاد مثال دیگه موج‌های مختلف پیدا میشه کوتاه بلند شکل‌های مختلف اشکال گوناگون و عرض کنم که اون در حقیقت دریا یک حقیقت ولی در موقع تجلی معنی صدها و شکل پیدا میشه این برای که زن تا آشنا بشه ولی خدا کجاست دریا کجاست ما دریا مجبور و باد و فشار هوایی کلیم ما خدا تعالی مختار است به هر حال اینطوری میگه اون حقیقت واحد در مقام تجلی به کسرت میرسه ولی خودش واحده عالم کسیره انسان حیوان نبات پرشتر زمین آسمان چنن پرم و چطور این کسرت از اون وحدت پیدا شده این کسرت به صورت اجمال در اون وحدت بوده یعنی همون عدد بیناهایتی که یکیست اما در این حال همه ها توش هست ولی بعد آشکار شده به صورت انسان و حیوان و نباتو پرده در بود بعد سفات خدای تعالی که تقسیم کردیم سفات فعل و زاد ذات سفات ز... به استضاف فعل خداون سفات فعل خداون همه منشه ذاتی داره بله همه منشه ذاتی داره مثل این میکنه شما تدریس ریاضیات رو. در شما علم به ریاضیات هست بعد شروع میکنید رو تخته اعداد رو نوشتن بیانات کردن اینا همه مظهر همون علم درونه شماست تا این سپات در خدا نباشه تا سپت حی قیم نباشه حیات نمیتونه خلق بکنه تا عالمون بلعشتی ها نباشه نمیتونه جهان علمی بسازه تا قادران علا کل نباشه نمیتونه این قدرت های عظیم انرژی ها عظیم داخل در اتم ها مهار شده اینا رو پدید بیاره بنابراین تمام افعال یه ریشه های ذاتی داره و اون صفاتم هم گفتم با هم وحدت دارند. بله این سوال پیش میاد. همین رو که واقعا این همه منشأ ذاتی داره اون سپات ذاتی خدا ام. تعالی عامل این تجلیات در. در حلقت، در عث در رز چرا به یک نسبت به اشیاء داده نمی شود یا به مخلوفات داده نمی شود؟ بعضی حکمت صفات حکمت همونه اونجا دخالت میکنه و کنم که مسلحت، حکمت، ترهریزی از کنم که اشیا همه به اسطلاح استعدادهای مختلف پس این استعدادها همه باید در حد خودشون پر بشن این است که این بس بس مربوط به حکمت الهی میشه که چرا موجودات مختلف هستن بعضی از فلاسفه گفتن که الواحد الله یستر انه الا الواحد اون خدای واحد جز یک واحد ازش نمیتونست سادر بشه برای اینکه او واحد حقیقی هیچ کسرت درش نیست بعد تجلی کرده به صورت یک واحد باید باشه. اسمشو گفتن عقل اول یونانی این طریب تصور داشتن بعد اون عقل اول عقل دوم آفریده عقل دوم عقل تا عقل دهم ده یعنی اقول اشتره بعد اون فلکال افلاک رو متابقه از کم که نجوم قدیم آفریده اون فلک نهم رو بسته بعد فلک هشتم فلک هفتم تا به رخه زمینی تصورشون این است. در حالی که این غلطه چرا به جهت اینکه مگه شما نمیگیید که در اون واحد که خدای حقیقی است همه چیز هست در این که واحده همه چیز هست بی‌نهایت است که همه علل ها توشه خب اون میتونه یه مرتبه تجلی بکنه نه اینکه یه موجود خلق بکنه میتونه هزاران موجود خلق چون همه چیز در او هست باید تجلی میتونه به صورت بهتر حالا به صورت کسرت تجلیاتش پیدا بشه در اون رو که نبستن بنابراین القانون واحد لایست رو انهل الواحد نه با عقل موافقه نه با نقل قرآن کریم من فرموده که ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده خلقت همه شماها و زنده ساختن همه شماها پس از مرگ نزد من مانند به خلقت یک تنه و زنده کردن یک تنه من این مثال زدم که معلوم بشه قضیه ببینید تمام این چراغ ها که الان در تهران روشن میدون ها این ها در کارخانه اصلی ممکنه با یک کلید رابطه داشته باشه یک کلید که بزنن تمام شهر روشنه یک کلید که بزنن تمام شهر خاموش حالا اگر اون یک کلید اتصال به یه چراغ داشت در حالی که الان نیروی برقش اتصال به میلیون ها چراغ داره میزدن یه چراغ روشن میشد یه چراغ خاموش میشد الان هیچ فرق نمیکنه اونی که میزنن سبحا ما خلق و کم ولا بعثكم الا كنفس واحده قدرت مطلق اینه خلقت همه شماها و بازاپرینی همه شماها نزمن مثل خلقت یک تن و بازاپرینی یک تنه حالا اون چیه چه خبره که این اعضا اینطوره این تره و ف... ف...